موزیکو بذار میخوام بهش اصفام به تو میخوام بدونی ارزش دلمه یکی از من یکی دیوار بشه از من چرا از گیرات کله نه بذار بذار بذار یادت بیارم تا بودی گفتی شبا تو یادت میدارم بذار فصله رو به خوابت بیارم بدون تو لبام یه فیلتر سیگارم که زمستیم شده خسته دستم دوتا شد تو بغلت هر ببستم نمیخوام ببینم بیشم نیست یا با نبودت منم نبود مرزم ولی من به یاده تا صبح میدارم کسی نیست بخواه به جای تو بیارم تو بحار و تو من مسته مستم صبح و شب بود دستات تو دستم تا کف با هات به شناوه چستم من یادمه همه خوب و بدار و جای تعمل لبات روی لبام و حتی گل خنده روی شبا رو کارات میدم روح و روانم الان آرومم ولی تنه دل خوشی با اون رفت داغم نم آسونه سخت سخت بود روزا من مست و مست روی رویشه نمیشینم یه دست و عروم تا به تو فقط مال منه دستم تو دست گفته هم همین سر روشونه میرم رو خواب همین بارم نمیشه که ما کنار همین با تو لحظه رو نمی دیگه نیست درمانه چایش و مردنه بلندزه ها رو من روزای رفته ها که سهره هایی که همه شد کلوم میپره این چهار فصل جدید خوش میگذره شبه سیاهه و سفیده به هاش چی جوری میگذره هنوز دست میکشی رو بدنش بدون من افتخار میکنی به بودنش انقدر بضاوت نکن رو اول دست بذا دستش بعد بگو آمبولین و تگ سر از همز ر داره وسط اونی که باهات بود الان روزان شده سیگار سیگارش لازم و فقط یه دووار ارا میوازم من یاد رو چه مرد خوش شانسیه که داره تو رو اگه فکر می کنی ارزش داره برو ولش بریم سراغ فصل بعدی ده وسی میگه حوصلشی. پای زنی برگا ریختن عشقامونم داشت با سرما میرفت hey, من ساله رو نگاه فکر نمیکردم نبینم نبی از حتی یه الان چه فصله بیشی هم نیستی بگو چی جوری میگذاره این شبات بدون من الان خوشی نمیم کاش شار فصل و شربونم آرات رو ره من آرومم ولی تنها با اون